Up. Up. واني فارسي بناوي کردگاری تاکو به هوتا ویرانی خوشویستو لاگرانی گوشه ایوانی فارسی سلاوتان لیبید. هیوامان کامرانی و شادیتانا لهمو قناخکانی جیانده. امرو محمد و رامین چونتا بازار. اوان دیانوی پیلاوو کولا پشتیو هروها جلو برگی ورزشی بکرن. چون بنيازن پینشمه لگل هاورکانی خویان برون بو کیوو کجکانی باکوری جمهوری لنیزیک جامخانه فروشکای کی ورزشی را دوست لفروشګاګه زورت شنه جانتا او کوله پشتي ورزشی او کلوپلی دیکه هایو پیکو دچینېو ام فروشکایا سره تا وشنوکان د بیسینو انځا جویدا گرین لا وتویجن یوان محمد رانینو فروشیارک روز بخیر روز بخیر روج باش بفرمایید بفرمایید فرمون ما می‌خواهیم ما می‌خواهیم اِما دمانوے دو تا دو تا دودانا کوله پشتی کوله پشتی کوله پشتی او او او آن چند است آن چند است اوا بچندا کدام کدام کما مشکی مشکی راش آن بالا آن بالا لو ژوره کناره کنار تنیشت ساک ساک جنتا سفید سفید سپی، هفت هزار تومان هفت هزار تومان ح هزارمن مثل آن مثل آن وک او رنگ رنگ رنگ دیگر دیگر دیکه شما دارید شما دارید حنه او دارد او دارد حیتی آبی آبی شین سبز سبز. ساوس. ببخشید. ببخشید. ببورن. قوه ای. قوه قوایی. نه هزار. نه هزار. نه هزار. کمی. کمی. کمیک بزرگتر، بزرگتر. گورتر. اینجا. اینجا، ایرا، چند مدل، چند مدل، چند مدل، ما داریم، ما داریم، همانا، لطفان، لطفان، تکای، بیاورید، بیاورید، بیهنن، سمت چپ، سمت چپ، لای چپ، پشت. پشت پشت پشت شیشه. پشت شیشه. لپشت جمعکه. کوچک کوچک بچوک. کوچکتر. کوچکتر بچکتر. همان همان همان. من میخوا من میخوا. من دم می‌بینم. چشم، چشم. بچه‌وان. همین الان، همین الان. هر یک يا محمد رامين چون تنيو فروج كا تكايا گويلا وتويجني وان اوان بجرين سلام خانم روز بخیر. سلام خانم. روز بخیر. روز بخیر، بفرمایید. روز بخیر، بفرمایید. ما دو تا کوله پشتی می‌خوایم. ما دو تا کوله پشتی می‌خوایم. آن کوله پشتی چند است؟ آن کوله پشتی چند است؟ کدام کوله پشتی؟ کدام کوله پشتی؟ کل پشتی مشکی آن کول پشتی مشکی بالا، کنار ساک سفید. بالا، کنار ساک سفید. بله بله، آن کول پشتی 7 هزار تومان است. بله بله، آن کوول پشتی 7 هزار تومان است. مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ مثل آن رنگ دیگر هم دارید ؟ بله. آن کوول پشتی سه رنگ دارد. مشکی آبی سبز. بله. آن کوول پشتی سه رنگ دارد. مشکی آبی سبز. ببخشید، این کول پشتی قهوه ای چند است ؟ ببخشید. این کول پشتی قهوه چند است ببخشید این کول پشتی قهوه چند است آن 9 هزار تومان است. آن؟ 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. کمی بزرگتر است. اینجا چند مدل دیگر هم داریم. اینجا چند مدل دیگر هم داریم. لطفاً اون کوله پشتی را بیاورید. لطفاً اون کوله پشتی را بیاورید. سمت چپ پشت شیشه. سمت چپ پشت شیشه. می‌فرمایید؟ از این مدل کوچکتر هم داریم. بفرمایید. از این مدل کوچکتر هم داریم. پس من همون را می خواهم. پس من همون را می خواهم. چشم همین الان. چشم همین الان. استاج همان وتیج به ورگانی کوردیو سلام خانم روز بخیر سلام خانم روز باش روز بخیر بفرمایید روش باش، فرمون. ما دو کوله پشتی میخوایم. اما دو کولا پشتی من دوه آن کوله پشتی چند است ؟ او کولا پشتی به چند کدام کوله پشتی؟ کم کوله پشتی. آن کوله پشتی مشکی. او کولا پشتیا راشا. بالا، کنار ساک سفید لو ژورره، لتنیشت جنتا سپیکه. بله، بله، آن کوول پشتی هفت هزار تومان است. بله، بله، او کولا پشتیا ح تمنه. مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ و وکو او رنگی دیکشن هی؟ بله؟ آن کول پشتی سه رنگ دارد. مشکی، آبی، سبز. بله، او کول پشتی سه رنگی هیه. رشو، شینو، سوز. ببخشید، این کوله پشتی قهوه چند است؟ ببوره، او کول پشتی قهوه یه بچنده؟ آن 9000 تومان است. اویان 9000 هزار کمی بزرگتر است. کمی گورتره. اینجا چند مدل دیگر هم داریم. لیره چند مودلی دیکشمن هیه. لطفاً آنکول پشتی را بیاورید. تکایا او کول پشتیم ببینه. سمت چپ پشت شیشه. لای چپ لپشت جمکه. بفرمایید. از این مدل کوچکتر هم داریم. فرمون ل مدله بسکتیش من هیه. پس من همان را میخوام. کوایا من هر اوم دوید. چشم همین الان. بچوان هر ایسته. هر وقتی استان محمد و رامین چند مدل کالاپشتیان برانگی جیاجیا و بینی فروشیارکا لحاظ جردن دا یارم تی آوانی دا. سرانجام محمد کالاپشتیکی بچوکی سوژو، رامینیش کالاپشتیکی گورتری شینی کریو لفروشگاکا هت نداره و آوان دیانویپتن بو دوکانی که وش بو آویپ زانن دریایی ماجرا که چون دوی، هوری منکن لبرنامه کنی دهاتوی وانی فارسی ده، بلام درده دگین کتای برنامه امروی وانی فارسی و تا برنامه یکی دی که به خواهی گوره دست